الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على سيدنا ونبينا القاسم المصطفى محمد اللهم على وعلى اهل بيته الطيبين الطاهرين الهداه المهديين موضوع بحث موضوع شناسي و جایگاه آن در فقه و استنبات مقام معظم رهبری است. موضوع شناسی دارای دو شق در زیل می باشه. یک شق موضوع شناسی معتوف به موضوعات مطرح در نصوص هست و دیگری موضوع شناسی معطوف به موضوعات مستهدسه که در نصوص نیامده اند نوعا وقتی گفته میشه موضوع شناسی نگاه میاد به سمت این دومی و اولی محل توجه قرار نمی گیره. در حالی که توجه به موضوع شناسی ناظر به موضوعات منسوسه یا منسوس علیها از دو جهت ضروری است این که اینکه ما اگر اون موضوعات رو محل بررسی و شناخت قرار ندهیم و برخورد متسرع و یا گاهی سرسری و شتاب زده با اون موضوعات داشته باشیم اجتحاد ما ناقص شکل بگیرد و استنباتی که نهایتاً می کنیم تزمینی به درستی نسبت به درستی آن وجود نداره و بزل جهد رخ نداده است و فاید مندی دیگر آن این است که اگر موضوع شناسی ناظر به موضوعات مطرح در روایات انجام نگیره اون موضوع شناسی دوم که ناظر به موضوعات مستدسه است نیز به درستی انجام نمیگیره چون این موضوعات مستحدثه اگه خواستید شناسایی داشته باشید دو بخش داره یه بخشینه برید. رو بشناسید بر اساس تخصصها بخش دومش لینک کردن این موضوعات مستحدثه با آنچه در نصوص آمده است در ارتباط با اون موضوعات گایا اینا زیر اون می کن جن نمی کن جن، یه بخشی از این تلاش برای به تعبیر امروزی ها ایجاد رابطه و ربط و برقراری یک حالت لینک بین موضوع جدید با مبانی و مبادع و قواعد یه بخشیش مربوط به همون شناخت موضوعات منصوص است لذا این تصور که به صورت خاطی رخ داده است که موضوع شناسی صرفا معتوف هست به موضوعات جدید این تصور میتواند فقر را آنگونه که باید در مسیر درست قرار ند. آنچه که امروز بندن کام ارز بکنم موضوع شناسی از سنخ ابواله موضوع شناسی سنخ دوم از دیدگاه مقام معظم رهبری بحث دیگه نیست رو فرصت دیگری ای کرد نشد که در توی موضوع شناسی ناظر به موضوعات جدید اگرچه شعار اون زیاد داده میشه اما این هم از یک مشکلاتی و نقص ها و کاستی های رنج میبره و هنوز یک چارچوب دقیق شفاف علمی مشت پرکن از حیث علمی هنوز در سطح خوزه نسبت به موجود شناسی دوم یعنی ناظر به موضوعات مستجده و مستحدث هنوز رخ نداده اگه چه خب اندیشه های مهمی مثل اون نظریه تبدل موضوع زمان و مکان که از زمان خرموندن و اینا وجود داره اما تطبیقات اونها و نگاه های تعمیقی در حوجه ها به آن معنا نگرفته است. و فعلا بحث من در این نیست. بحث من در اون موجود شناسی سنخ اول موجود شناسی که ناظر هست به موجودات مطرح شده در نصوص. مقام و معظم رهبری نگاهشون به موضوع شناسی معطوف به موضوعات مطرح در نصوص یک نگاه کاملا اجتحادی است. یعنی بخشی از فقه ایشون رو اگر بخواهیم خوب شناسایی بکنیم یا تمایزاتی که در نگاه ایشون وجود داره رو بخواهیم رسد بکنیم می توانیم زیل این انوان اون رو رفت بکنیم که ایشون کاملا یک نواه اجتهادی به موضوعات مطرح در محسوس دارم این که میگم گم به این خاطر است که در موارد بسیار اون اجتهاد مطلوب دقیق پیگیر من البد الالخزم نسبت به این موضوعات شکل می‌گیره. حالا بعضی اصلا هم اشتحاد بعضی اشتحادشون از یک خواستگاه ها و قاعده هایی برنمی خیزه. حال اینجا یکی از وجوه تمایز سپه ایشون نگاه اجتهادی اون هم با یک حوثل مندی و برخواستگی از یک قواعد یا مبانی هست. این بح محل بحث بنداست. من این هم اینم نیاز به تعمیق و پیگیری بیشتر داره. من یک سنگ بنای اولیه‌ای رو صرفاً ذکر می‌کنم. لعل مثل حاضر دوره تنعقد مطلقا اوخر ان شاء الله. اگر چنین چیزی رخ داد، که آیون خوششون اومده یا آجا فرمان انشالله یعنی اقدام بفرمایید. <تصفيق> بحث در این بار رو زیل چند مبنا که ایشون دارند ارائه میدن چهار مبنا رو ذکر کردم حالا این چهار مبنا اگر بحث بشود شاید به مبانی بیشتری بر بخوریم و هر مبنایی هم که زیگ میکنم اگه فحص بشه و از زیده شد نستازیم که بیشتری رو بتوان رسل کرد مالا من چهار تا مبنا رو زیگ میکنم و زیده هر مبنا یک مثال یک شاهد از کلام و اشتادیشون میارم تا یک کشف ماذا ارید و, و ان احول انشاءالله مبنای اول مبنای اصولی عدم اعتبار اجماع در تشخیص موضوعه میدانیم که هر جا اجماعی هست فقه ها نسبت به اجماع یک نگاه اعتبار بخش دارن حالا لبیتا دا ببانی مختلف هست مدرکی نباشه نمیدونم این حدث حساب احتمالات تا سفرد اطمینان به جلو بره و اما الازاله از سخنانی که اصولی ها گفتن کاری به اون ندارد اما ایشون یک مبنایی داره که حاضل اجماع الازی نقولو به اعتباره این در تشخیص موضوعات اعتبار نداره بحث موضوع شناسی سیم یه موضوعی بود که این موضوع یافتیم رو که عجمعو علا فهمن به نسبت الى الموضوع و تشخیصن للموضوع لاقی شاهد شون در بحث اخذ جزیه یا عدم اخذ جزئیه از سابعه که طائفتن منال طوائف ذات الادیان یک طائفه متعلق به یک دین است یک اجماعی رخ داده است نزد فقیهان مفاد اجماع این است که جزیه از سابعه اخذ نشود چرا؟ چون سابعه را اهل کتاب بینند یعنی در واقع یه قاعده در کار است که میگوید تو اخذارین جزیه من اهل کتاب قائله یا اون مقدمه دوم این که سابعه لیسو سو او لی ستم اهل کتاب فلا تو خدار جزیتو من هم اون مقدمه دوم که سابعه اهل کتاب نیستن این تشخیص موضوعی ماهیتش یعنی کی که سابعه اهل کتاب هستن یا نیستن یه برس موضوعیست دیگه من هم و اون کیا هستن اینها جا اینجا موضوع در کار می یعنی دست موضوعیست فقه ها که گفتن لا تؤخذ الجزیت من از لما چون نظرشون برینه که اینها اهل کتاب نیستن اون قاعده هم پیاده میشه که اهل کتابن که تؤخذ الجزیت من هم این تشخیصی که نسبت به موضوع دادن این تشخیص ولو هنها اجماع همه همینو میگن یکی اعتبار نداره این عبارت یشون رو ببینید در بحث جهادشون فتوال علما به عدم اخویل جزیه من از سابعه نما تن شد تنش این فتوا مما ما وشلوا الیه فی تشخیص الموضوع موضوع چی است آ من خونه غیر اهل کتاب اینا ها از غیر اهل کتابه که عرفت ازالیک یعنی این فتوا رو شما دیدید بی کلام المفید و القمیه با طبرسی یا تبرسی و غیرهم الا صاحب الجواهر رحم رحمه, رحمه رحمه الله خوبی و فتوا ایشون بعد میفرماید و عین هذا من الاجماع الحجه الذي يثبت ان حکم الله تعالی فی موضوع محدد معلوم با اجماع نسبی نداره اون اجماعی که اجمای حجت هست اجماع ان و زال اگر اجمای اولد یحکی هنه حکم رو داورن اینجا تشخیط موضوع دادن نمویدان موضوع تشخیط دادن اینجا رب دادن حکم بعد از تشخیط موضوعه اگه اجمای بر روی خود حکم انجام بگیره اها و شیوان اجمای که بر روی خود حکم انجام نگیره تشخیط موضوعه لهم رعی هم ولنا رعی اونا ما خودم ببینیم که ببینیم چه دیدگاهی داریم بعد خوب ایشون دیدگاهشون رو بیان میکنن که این کتاب در اینجا سه تا معنا برای آن متصور است یک معنای حد عقلی یک معنای حد میانی و یک معنای حد اکثری حد اقلی یعنی تورات و انجیل. میانی یعنی شریعت نازلی بر یک دین هر دینی که شریعت داره ادیان الهی مخصود استی و سومی که حد اکثریست یه مدار فراتر میره حتی اگه شریعت نداشته باشه ولی تعالیمی داشته یا به اون پیام و رسالتی متوجه میشده از لذام ایشون بر یکسری زوابط کارو در بحثشون هست بحث جهاد میان و مزان استعمال کتاب رو در قرآن بررسی میکنن بعد این نگاه شکلی آفته به صورت قاطع که هر کجا الکتاب ذکرت از کلمت و هیت تعنی که تورات و انجیب میگه اینجور نیست شما این قرآن رو یک سری و سرکی و یک ارتباطی ولو نه یک تحلیل کامل بستوفا حتی یک رجوع هم بکنید بیرید که این کتاب در مواردی استعمال شده به ای که اون معنای اعمی از آن مراد میشود بهذاب نظرشون بر اینه که اینجا این گروه نیز احلی کتاب به حساب می ما چرا احلی کتاب رو مصادره کردیم در یک معنی خاصی محصول کردیم و زندانی کردیم در یک معنی که افتادیم به این ورطه ای از نگاه های استنباتی. خب این یک مبنا از مبنای اصولی عدم اعتبار اجماع در تشخیص موضوع. خب یه مثال است ولی شما اگه فقه بخواید این قاعده رو پیاده کنید در موارد زیادی اینچونین هست حالا یا اجماع هست یا تلقی رایج هست یعنی یک موضوعی در فقه مطرح شده خیلی از موضوع در زمینه های مختلف یک نگاه و تلقی رایجی نسبت به اون شکل گرفتید دیگه همه همون حرفو میزنن خب ما باید اشتهاد بکنیم موضوع باید بکنیم. یک مثال بود خب این یک مبنا مبنای دوم مبنای تفسیری تناسب تعویل و تنزیل است این مبنا تفسیری است کارکرد فقهی هم داره ولی کارکرد تفسیری زیادی دارد. هم در فیق کار داره هم در تفسیر دوان کار کرد داره و خیلی جالبه اگه کسی این مبنا رو به یک عویسهی و مشکلی که در تفسیر رخ داده حل میشه ماهی حاضر عویسه و مشکل علتی وقت در تفسیر اینه که ما رابطه حدیث و قرآن رو هنوز به شکل شفافی حل نکردیم. بو خصوص جایی که پای تعویل به میان میاد نوعا تا پای تعبیر به میان میاد در تفسیر همه یکسره قرآن رو کنار میگذارن میگن خوب اینجا یه تعبیری رخ داده و این یک فرصت مهم استفاده از قران رو از ما ستانده و گرفته است الان خیلی از موارد که حدیثی یا عادیثی وارد شده در ارزواتو با یک آیه، از آنجا که این حدیث متزمنه یک بیان تعویلی است بیان تعویلی شاکرته هاش اینه که توی انسان عادی وقتی اینو از حدیث میگیرید نمیفهمید این رابطهش با اون قرآن چیست ولی میگید خود معصوم گفته نحن متعبدونه به بعدش هم یک کنار میریم، تمام شد. خب یه قاعده هم میگه که تفسیر قرآن با روایات شک میگیره. از پنجره روایات قرآن رو بفهمید و بشناسید. و این باعث شده که ما مرحوم علامه تبا طبع برای این حوزه فکر خاصی کرده از که حالا در مقام شهر اون نیستم. باید که ما هم علامه طباطبایی راه و باز میکنه که بابا وقتی تعویل هست قرآنو کرار قرآن نذارید چون قرآن بیان است چیزی که بیانه اصلا نباید کنارش بذارید بیان اسمش با خودشه بیان است یه میکنه بیان است عنوان قرآن و صفات قرآن بیان است اگه اون راهی داره حالا اگر وقت کردید و فرصتی داشتید بدید پیدا کنید اونو الان در مقام اون چون وقتمون گرفته میشه مقام با همه معظم در ارتباط با این حوزه قاعده ی ای داره این قاعده طلایس به نظر من چرا چون این ذهنیت استقراریافته و یافته مبتنی بر هر کجا پای تعویل از سوی سنت و حدیث به میان آمد قرآن بودیم زارید کنار به هم کاری نداشته باشه شما اینو بچسب این قائدی و مبنای تلاعی تفسیری میگن نه قرآن رو کنار نگذار شما اینجا یک کوشش و اجتهاد تفسیری کن یا فقهی حالا چون تفسیر که میگیم چه تفسیر فقهی هست چه تفسیر غیر فقهی هست نمیکنه حالا ما اینجا چون بحثمون فقه هست و موجود شناسیست مثال ایشون رو روی این بیاده می و این قاعده تلاعیست به درد همه جای تفسیر قرآن میخوره شما هر کجا که تعبیر بود اینو ازش استفاده کنید. من برای اینکه این مبنای تفسیری در واقع روشن بشود چند نکته رو عرض میکنم این نکات قابل توجه هست که بهش توجه بشه نکته اول چون اهمیت داره تمرکز بر تبیین این قاعده و مبنا مهم بعد علاوه بر استشهاد فرضی هم میاریم در آخری که چطور از این قاعده ایشون در فقه استفاده کرد نکته اول این است که تعویل به بیان مستاب پوشیده یا جزء پوشیده از معنای آیه تعریف باید گردد این از این عبارت معظم الله به دست آوردم که می ما برد انهم علیه مسلام فی تفسیر آیات الكریمه و امکانه من قبیل تعویل اگه چه تعویل است خب ماذا یعنی تعویل شو می اعنی بیان بعض المصادق او بیان شطر من المعنى الذي يفهمه هؤلاء راسخون في العلم من المراد في الآية بنابراین میتوان گفت که التعویلو هو اما بیانو المصادیق الخافیه یا الجزء الخافی من المعنى اون جزء پوشیده از معنا. برای از این خب این جالب از این شفافیتی در تعریف رو برا ما ایجاد میکند ضمنان اون هسته اصلی تعریف رو هم به هم نمیدنه چون یا یک مصداقی رو داره میگه که کانو هم یفهمو نهو او یذکرونه او قدسره او به علیه اونسلام یا یک بخشی از معناست که ما نمیفهمیم، فهمیم ولی اون بخش قبلیش و میفهمیم دیگه یعنی میگه بخشیه بخشی می فهمی. بخشی نمی فهمیم. در واقع معنای تعویل از نگاهشونیم نسبت تعویل چیه؟ خب الان بذارید اول ما تعویل رو قاعده رو بیان بکنیم آزه قاعده از ذهبیه بعدن میایم سراغ موضوع اون استشهادی که میکنیم از این قاعده در ارتباط با فقه اونجا معلوم می شود که ما داریم این قاعده رو ازش استفاده در حوزه موضوع شناسی میکنیم چون قائل مهم هستم من توضیحی گفتم راجبش بدم که اونجا هم فهم بکنیم بچه‌ها چون وقتی گید روش فقهی خب روش باید یک مجموعه ای از و مبانی در ورار این رو شما یک مبنایی دارید یا یک مبانی دارید بعد این رو به کار میگیرید میارید و استفاده میکنید ما فعلا در ممان شرح قاعده هست گفتیم چند نکته است ازا بیانناها و زکرناها فهیت و بیان ها به قاعده قاعده چیه؟ قاعده تناسب و تنزیل قاعده که ایشون گفت قاعده تناسب تعبیر و تنزیل این نکته ای اول بود فتعبیر ایشون اینجور معنا و مفسر از من مختصرش رو میگم نکته دوم ارتباط و تعلق ظہر طاظا دهر به تنزیل و بطن به تعبیر این جاله از اینم حالی شما ایشو ظاهر و باطن خب باید تعریفی ارائه کنیم و نگاهشون این است که زهر به تنزیل برمیگردد و بطن به تعویل برمیگردد البته این معناش این ثبوتن نیست چون تنزیل ظاهری دارد و باطنی در مقام اثبات هست یعنی در مقام اثبات و افاده و استفاده شما استفاده ای که می کنید از زهر است بلی بطن رو استفاده شو از تعویل ببرید. نه اینکه بطن مال تعویلت نه بطن مال همین آیات هست این آیات هستند که لها ظاهرتون ظاهرون و لها باطنون اونه اونجا در مقام اثبات و از این کلامشون هم فقط روی انهم علیه مسلم فی اینا رو در فقهشون فرمودن این نگاه تفصیلی در فقه فرمودن تا اون مطلبشون رو بگن یعنی از جایی ما نگیردن از خود فقهشون گرفتیم تو فقهشون به اصلای تفصیلی رو مطلب کردن فقط روی انهم علیه مسلم فی زیل ماورد من اندل قرآن دهرن و ان اندهر القرآن الذين نزل فيهم نزل فيهم و بطنه هو الذين عملوا بمثل اعمالهم و من المعلوم ان ظهر القران تنزيله و بطنه تعويله یک نگاه هست که داشته باشید برای نکته دو نکته سوم این تحلیلی که عرض می در قالب نکات برای اینکه قادر روشن بشه بلا کلامیشون یک کلام است تجزیه شده تا این نکاتش درآید. نکته یه ثبوم این که یک همجواری و همراهی دائمی بین تحلیل و تمزیل برقرار است. تحلیل کنار تمزیل و تمزیل کنار تحلیل این هم قبول بکنید به یک نکته از در این دستگاه فکری یعنی اینجور نیست که اگه تعویل برقرار شد تمزیل منتقی بشه یا بلرکینا با همن با هم حرکت میکنن و با هم هستن و جلو میاین و عبارت نده و وقتن هم داره اینا رو با هم مطرح میکنه در مقام ثبوت با همن در مقام اثبات هم با همن نه اثباتش هم با هم خب این یک نکته نکته چهارم این است که ما میتوانیم در مقام اثبات یک استفاده مزدوج از تندیل و تعدیل داریم. بریم اینجا کمی دیگه داره سخت میشه یعنی با بعضی از نگاه های رایج این نگاه داره تماید خودش رو نشون میده که تا قبل از این چه بسا خب کسی حرفی و انکاری نداره حالا اگه چه اونجا هم بعضی نگاه های خاص دارن ولی چون تا اونجا مربوط به ثبوت بود مربوط به ثبوت اینکه قرآن زهر و وقت داره برای اینکه تعریف ناظره به بقتنه ها چون ما نمیفهمیم اینو قاعده زن کسی منکرش نیست فروش. اما از اینجا به بعدش دیگه داره وارد یک فدای روشی میشه، چون بحث اثبات هست بحث روش هست این تو دریا ابزار به دست میگیری با یه ابزار میخواهی فقه به سازی یا تفسیر رو بسازی سادی با این از که شما می توانید یک بهرهگیری گیری مزدوج داشته باشید بهرهگیری گیری اثبات از روش است یک بهره مزدوج از تنزیل و تعویل داشته باشید. ذهنیات و قالبی که نزد مفسران وجود داره اینو که هر با پای تعویل به میان آمد دیگه با باید تنزیل رو به قرآن رو فعلاش کاری ندارهش باشه همینی که داره میگه اینو بهش اونجا خود به خود تزمین میشه به قرآن میرسیم ولی نگاه رهبری در این خصوص از حصه فکر اینجور نیست از حصه روشینا را یک نوع دوشادوشیه سبوتی و دوشادوشیه و همجواری اثباتی برای این دو قائل هست و من بخواهم وقتی اول بگیرن که خیلی طول نکشه، داشتم قبلا نوشته بودم بر خب پس یهم یک نکته نکته بعدی این است که حالا این روش اثباتی که ما می‌خوایم تعمیل و تنزیل رو در روشمون به استخدام آوریم و هر دو رو به کار بگیریم چه سنخ به کارگیری باشه، ایشون معتقد است که این سنخ به کارگیریش باید همگرایانه باشه یعنی تا میتونی اینها رو کنار هم بگذاری که نه تنزیل رو از دست بدهی و نه تعویل رو و اینها رو در یک نظم هماهنگ اثباتی ما قبول داریم که ثبوتن هم همه هستن ولی نظم هماهنگ اثباتی قرار بریم نه اینجو باشه که شما یه نوع تعارض و تنافی و تخالف و این حرفا بینشون نشون ببین نه اینا رو در یک نظم همه هنگ روشی قرار بده و رضا حتما شما بر تنظیر و تأکید کنید و اینجاست که اون قاعده شکل میگیره تناسب تنظیر و تعبیل یه روش هست یه انصر رسیمی به این تناسب ایجاد بکن مثال که زده این معلومش محصول چی هست نکته ششم که دیگه بحثه این قاعده تمام بشه سراغ دار اون تطبیقی که فرمودن ایشون معتقدن برای ایجاد ایجاد چنین تناسبی یعنی برای خلق یک عنصر روشی مبتنی بر تناسب بین تعویل و تنزیل یجب علیکم از بین کلمه البعد و شطر البعد و شطر اینو داشته باشید این عذیت روشی در کلامشونم قبلا بود این البعد و شطر در ابتدا عرض کردم دوباره کلامشون رو میخوانم ما ورد انهم علیه السلام فی تفسیر رایات الکریمه و اینکانه من قبیل تعویل اعنی بیان بعض البعض اعنی بیان بعض المسادیر او بیان شطر اون معنای اولی رویشون یک دوتا کلمه کاربوردی قابل تمرکز همیشه در دست اینو داشته باشید خب این تا نکته بود لطوضیح حاضر قاعدت وحبیه شیشومی, شیشومی در واقع آمده تا اون نکته اولا و اولی رو تبدیل بکنه به یک ابزار ادبیاتی. چیزی مازاده بر اون نداره ما نکته اول چی گفتیم نکته اول گفتیم که تعویل یا بیان مسادیق پوشیده است یا بیان جزء پوشیده از معناست درست است اونتای از حیث ادبیاتی شما اگه بخواید این رو ذهنتون متمرکز باشه چون میتونید بخشی از ار مصطلحات هست اگه بخوایم یک مصطلحگیری بکنیم اینجا چون با مصطلحات ما میتونیم جلو بریم این نکته ششم این چیز بر نکته اول نداره فقط یه عدبیاتی رو به شما میده که ذهن شما از تمرکز نیفتد خایده عدبیاتی داریش فایده محتوایی نداره محتوا همون اولیه وان این از که یجب علیکم ترکیز حاتین کلمتین حاتین کلمتین وهما کلمتین حاتین بعض المسادی و شخص اشاتر منن معنا، جودن منن معنا. خب این قاعده بود دیگه گفتم این قاعده فقط مرافق نیست شما اگه اینو بتونید مثلاً این کسی یکم رساله‌ای بنویسه میگه که این قاعده رو من می‌خوام تطبیق کنم در قرآن ببینم چی ازوش در میاد حالا خودشون یک مورد پیاده کردن علی شما بخواید اینو مساجد رو دراری مباهیش دراری مقارنه کنیتونی که مثلا مخاطر رسالهی بنویسه مقایسه و مقایسه کنه با مبانی دیگری که در باب تعویل هست از حیث کارکردی و کاربردی، از حیث ماهوی و ماهیت و از حیث مبانی رساله زیبایی از کار در میاد اون قاعده رو که ایشون فهم بوده با شما دیگه تطبیقات یعنی یه مورد ایشون تطبیق دارن حالا اون تطبیق ایشون فرموند چه ارتباطی با موجود داره ما هم ارتباطه رو گفت خب تطریقی که ایشون داده راجب وجتنبو قول از زور هست قول از زور قول باطر در قرآن آمده دیگه آیه قرآن است کلامه قول از زور کلام یعنی قول گفته نه گفته فعل از زور گفته قول از زور کلام شعن نزول آیه هم اون واقعه ایست که در واقع اهل جاهلیت کانو یعتادونه به قول یک عادتی داشتن برای یک قولی اند تلبیه موقعی که میخواستن تلبیه کنن گفتن لبیک لا شریک لک لا شریکن هو لک الاخر یک کلام شرکالودی داشتن آیه قرآن که میفرماید می قول دور اونو داره میگه اون پس اونا فعل نداشتن قول داشتن یک سخن باطل داشتن درست در خب این تنظیر تنظیر الان تمرکز علا ایشه این علا القول بی ایسراغ تعویل یا روایت روایت اومده غنا رو برده زید این قول زور قرار داده بختی ذیل اون قرار داده یه دفعه الفقه ها كثير منهم ذهبوا الى ان الغنا هو القول غنا را بردن به سمت قول ایشون یک مبنایی داره در جای دیگری راهبریو عرض میکنم یک مبنای دیگری داره که اونم به شناسیشون برمیگرده که یک نگاه تاریخی و لغوی آمیخته که یعنی از علب زیبایی های فقه ایشون و روش فقه اینه که در خلاف خیلی از ماها که نحن و الان سلاست سطح اصنا اونا سه دست <تصفيق> یعنی سه دسته میشه در نظر ریدید در اعتباط و یک دسته المنجدی هستند. مقصود من این نیست که المنجد لعتباره به. یا مقصود این نیست که همه این دسته به المنجد مراجعه میکنن نه مقصود اینه که به یک کتاب لغت مراجعه میکنن و سلام نامه تمام و المنجد هم با خیلی تحقیقات خوبی داره یعنی در اشتهادشون المنجدی هستن این لغت نیست هی که بخواهد اینجوری با لغت لغات روایات و قرآن برخورد بکنه پیاده است یه دست دسته دوم کسانی هستند که نه اجتهاد در حیطه کتب لغت انجام میدن بعضی از فوق ها یه کمی بالاتر سه اینو گفته نمیدونم جمعینه گفته هفش کتاب لغوی رسان عرب و غیره و غیره رو میارن این هم یک گرایش این هم باز کافی نیست یعنی شما محدود و محصول در کتب لغت لغت هستید ای که این دسته سوم ثوم که حالا اقام معظم رهبری در این دسته حضور قبی داره اینه که یرجعون الا کتب لغت، همه کتب لغت که اون دسته دوم داشتم یرجهون ال الادب العربی ادبیات عرب، آنش شعرش نصرش معروف است که معظم رهبری اقانی رو یه دور، یا گاهی بعد میان دو دور مطالعه دقیق و یادداشت برداری، ادبیات عدب عربه ادبیاتی که به شما لغت میده، نگاه میده واقعیت‌های های نامکشوف رو یعنی فرق مقابل شما قرار میده شما اگر تو زمان خود باشی و ادبیاتو بشناسی اصلا چیزی می‌فهمی که اون کسی که بی‌توجه توجه به ادبیات اصلا نمیفهمه خب ایشون ادبیات گذشته رو باید برون مطالعه بکنه فقیه باید برون مطالعه بکنه ببینه چه خبره در واقع خودش رو جای یک لغلی صاحب کتاب قرار میده چون او هم رفته مراجعه کرده در حد خودش اشتهاد اوست شما چطور در اشتهاد او میخواد تکیه تکی بکنید شما باید برید ببینید پس مرجع دوم الادب العربی ادبیات عرب چه نرست چی؟ مرجع سوم روایات روایات وقتی لغت رو میاره مزان استعمالش رو دیدن و بررسی کردن و این سه رو در یک نظم هماهنگ محل تحلیل و موضع تحلیل قرار دادن و رسیدن به معنای لغوی و ایشون در کتاب غنائش در جای جای کتاب غنائم نگاه کردن در این کار کرده یعنی لایت عبد به ما صاحب کتاب لغت، اینجا تعبودی نداره، اینجا اشتهاد است، تعبود معنی نداره، این فلانی اینه گفت منم برخوا همین معنی شده، این شما دور میکنه اصلا دی حرفا یا کتب لغت، این کافی نیست، ایشون در واقع یک سزل مسلسی این ای رو فعال میکنه و بعد مثلا میاد معنای غنا رو مشخص میکنه، مثلا میفروان که غنا لیزه و قول، الزنا و بالفعل الغناه و الفل. خب این مبنا رو اونجا گرفته اینجا هم خب خیلی اینجا میگن که قول زور که قرآن است و بعدش هم غناه آمده زیر این قرار گرفته است پس نتیجه میگنن بلغناه و القول تموم شد ایشون میگه نه خب از طرفی از روایت نمیتونید دست بکشیم از طرفی تنزیل هم در کار است اون آمده رو قول تبرکز کرده قناع هم از دیگاهیشون بر اسب اشتادی که داشتن فعل است و کیف یتلا امان حاضانه اینا چطور با هم می ایشون از این ره گذر بر اساس قاعده احفظ علی تنزیل احفظ تنزیل حافظ علی تنزیل تنزیل رو حفظش کن تعویلن حفظش کن و تناسب این دو رو برقرار کن چه نتیجه ای دیرن؟ نتیجه رو الان بنده از بر اساس کلام معظم الله فما ملاحظت انال آیت الشریفه اعنی قوله تالا وجتنبو قولت دور واردتون في ضمن ايات الحج وبيان ما ينبغي فيه وما لا ينبغي وان الظاهر المراد من قول الزور فيها القول المعتاد لأهل جاهریه بتنبيته من الاخر فمع ملاحظة ذلك فجعل الغناء من هذا القول وتحقيله به لَيْسَمِ مَا يُسَائِدُ و هُدَّو و وَالْفَحْمُ الْمُسْتَقِيم فرقه ها میگن پس این قول استی که تاون شد و تعبیلو با فهم و نمیشه. قُسْلِيم نمیشد الان اَنَّ الْغِنَاءَ لَيْسَمِ حتی یا تنا این من کلام حتی کلام هم پوش بره معدود و من افعال این فعل است این براس اشتغال لغقی ادبیات عربی که داشتن اینو فرمون و اط من تنا ب شعرن و غیری قال مثلا این جالب است میگن تغنا به کذا تو عرب هست میگن مثلا این مغنی تغنا به کذا الاون بني عباس که مغنیات بودن میگن المغنیات تغنی نبه کذا این عبارتشون فلا یتلقا علی من تغنی به شعرن او غیرهی ان نه قال کذا کسی نمیگه قال کذا قال کذا چی میگه تغنی فعل تغنی که قول نشه بلی قال نه اگه اون باشه میگن شده کذا او تغنا به کذا و کیف یکون این مرمای عبارات ها و اصطلاحات با دقت داره انجام می گیره بلی وقال انه شده کذا اگه بحث قولش باشه او تغنا به کذا تغناش فعل اون کذاش قولشه فکیفیکون الفعل مصداقا لقول زور و کیف یه تناسق ما زکروه و فی معنی الآیت شریف ما اما خوبا مسرحان قرآن تنزیر مسرح در اون تصریح شده از اما ایستراحت ویدش میکنید و تعویل باید تناسق داشته باشه که تعریل رو بیارید به جان تصریح بندادی که نمیشه مسرح بکنیم اینالاقوان و بنائا على ذلك نتیجه کهشون میگیره این است که میخواد هم تعبیر حفظ می شوند هم اینا چون یک نظم هماهنگی دارند بل متعین حمل و ماورا ده انهم علیه السلام فی ویل الايه علاما یا تناسب المعن الظاهر منها ام على الوجه الذي ذكره الشيخ الاادم ان اختصاص المراد من الغنا به ما يكون الكلام المتغنابه باطلا یا باید این نتیجه رو بگیری که مرحوم شیخ انسالی گرفته است که اون غنای حرام است که کلام باطل توش میان کلام باطل توش میان وقت حرمتش با خاطر کلامشه وقت با آیه می سازد لما دار جعلت روایه غنای فعلی را زیل قول زور اون که فعل است این توجیه شیخ انصالی اینجا ظاهر می شود ایشون غنای محرم ون لبیت هزم من قولا باطلا ون با اون به خاطر قولش می زیله قول زور یا اینه باید بگیم کرته ایشون رو نداره میگه این یا باید اینه بگیم بلا لیکن الا ما من اشکال او الا وجه آخر سنو ویهنو انشاءالله تعالی که اون استدراک با شیخ اعظم هست که در واقع اینجا میاد و یک گویی تنقیه منات می شود که قرآن وقتی می فرماید قول زور اون کلمه از اون منات اصلی پردخالت ساز از کاری با قولش نداریم حالا اگه فعلی هم باطل بود غنا باطل می شود اگه اون باطل بود اگه شما هر غنای رو حرام نمی در نگاهشون بعدا شاید اشاره بکنیم ولی کلمه بطلان هوا المنات فی تحریم شیئن سواء اون کان قولن و هوا الگذی سر به او فعلا و هوا الغنا و اعمه ادهار که غنای را زیل قول زور نهادن نه به لحاظ قول به لحاظ بطلان و باطل بودن به لحاظ باطل خب یه اشتهاد هست یا یه اون قاعده در اینجا پیاده شده است. و اذن ایشون فرماید خب موضوع شناسی چه داره اذن از زور غنا حساسا هلو موضوع هم نه حرامون لما و هلو اساسن حساسه به خاطر آیه شریفه این غنا زیر اون قراریه است که میره ذیل اون اشتنه و قول از زور قرار میگیره لبستش که چه رفتی داره با قولی فعله نه اون بوتلانش اون زور مهم است نه اون قول پس این قائل است میگم این کار کردش ظاهران وقت ما رو به انتها اینجا که میفرمایید شما بله. یعنی ما ده دقیقه دیگه فرصت داریم یا خب چند تا از من سوال هم ندارم 6 تا خب پس این هم یک قاعده یک مبناات حالا دو تا مبنا ذکر کردیم یک مبنای اصولی ذکر کردیم یک مبنای تفسیری ذکر کردیم حالا یک مبنای سوم هم ذکر می‌کنیم که حالا بحث رو تمام می‌کنیم مبنای سوم اینو بعد روش کار کرد اگه این به اصطلاح مبنا برایت و شکل بگیره خیلی کارگوش ها و راهگوش ها سرفه و این است که ایشون یک مبنای واقعیتگراهی در توجه به وضعیت اینی یک مفهوم دارد. یعنی لکان هنگ آن در دسان شب مفهومی دارد که الان قراعتن اجرانا پذیر است در جامعه همه رو به هم میریزه و الان قراعتن اجرائی پذیر است یعنی یک نگاه گرایانهی به وضعیت عینی مفهوم دارد ایشون موضوع شناسیشون میگه برید به سمت یک هماهنگی بین قرآن و واقعیت البته میگم این نیاز داره به بحث بیشتر ولی مثالی که بخواهم بزنن که در خود کلامیشونم آمده است و کم کم بحث رو به اطمان برسونم مثال نسبت به لحوه است خیلی ها وقتی غنا رو تعریف میکنن بگن اون چیزی که لحوه است با خاطر لحوه بودنش آنصار کارامدی که به اصطلاح غنا رو حرام میکنه، اون ماهیتش و ذاتش لحوی بودن هست این بعد میگن لحوی بودن ایشون یک نگاهی به واقعیت لحظ در زندگی میکنه میفرماید که و اگه میگوشه همه کارهای ما تو دنیا لحظه مثال هم میزنن یه تو آشبازخونه میری دو دوست جلسه میگیری جده رو کنه همش لحظه دنیا رو وقتی تعریف میکنن میگن لحظ و ولعف اصلا ماهیت دنیا لحظه پس هیچ کاری نکنیم ما اصلا زندگی نکنیم اون اینکه نشد که بگید غناب یعنی به خاطر لحوی بودن آن حد خراب است بعدی نگاهی دارن نگاه کمی هم نیست لحوی بودن غنا به خاطر لحی بودن بودن اینجور باشید لذا یک گیدی رو اضافه میکنن که که جد،, جد اون من لحو حرام می شود بخشی از لحو حرام است و اون ازلال انصبیل الله داشته باشه از قرآن هم همینیم سرماز به قرآن که مراجعه میکنم لیو بل انصبیل ازلال هر لحظی حرام نیست در واقع یک هماهنگی و رفت و برگشت از واقعیت زندگی اجتماعی به قرآن از قرآن به اینجا و سرنوشت موجود را در این میانه حل کردن و اتفاقا اگر ما مراجعه به واقعیت عینی مفاهیم در اجتماع داشته باشیم و به قرآن هم ندر بیفت کنیم سینکش خلان و حقائق ما خیلی بهتر تقیقتر یکیش شعی مثالی اینجا سیگه ایشون برخلاف خیلی از آرای که میگوید غنای لحوی اونجورم یا ماهیت غنا رو میبینن یا غنای لحوی کلان میگن حرامت جون گرن این اینجا کل این لحظی که ما داریم تو زندگی همه اینها حرام است و ما نهی نه باید اصلا کاری بکنیم ایشون یه عبارتی دارد لحوی که در انوان زنای محرم محقوض هست مطلق ما الها انذکر الله نیست هر چیزی که الهای انذکر الله بکنند حرام نیست در زندگی متعارفه ما مردم زندگی متعارفه ما مردم کارهایی هست که مرهی هم ذکر الله هست مثلا مطالعه میکنید آشپزی عشفظی می میکنید و حسن نیداره میکنید می تو از, از با هیچ توجهی به خدا یه جایی دیگه است آلا امامان ما امام،, امام علی دارد که به هر شیعی که مینگریز یا تناولی داشت سه بار خدا را می قبل و و بعد او امام علی است ما وقتی که سرگرمی چیزی هستیم سرگرم همون همچ کار هستیم خدا اون وقتی نیست به مهمان نسیدگی و ها آن لهی که اگر غنا متتبع آن شد می شود میشود حرام لهو مدلل ان سبیل الله است این واقعیت عینی را بردن به سمت قرآن و فهم دقیقی از قرآن کردن و قرآن را به سمت واقعیت و قرآن این خصلت رو داره حالا بحثش اینجا نیست قرآن این خصلت رو داره که اگه شما او رو با واقعیت های زندگی بیاورید و رو به رو بکنید قرآن خیلی به شما نسخه میده و خط میده و وقت روایات هم بهتر میفهمید چون همین بحثات تو روایات اومده ولی یه بحثی است که آیا ما همیشه قرآن رو با روایات فهم کنیم یا روایات هم با قرآن میتونیم فهم بکنیم نظر دقیق این است که قرآن گاهی یک نوری میفقند که روایت معنای خودش رو باز پیدا می کند. اگه در مواردی از تفسیری شما قیده ها و قیود رو باید از رواید. این بحث قرآن و این بحث قرآن و واقعیت قرآن و حدیث. اینا چیزایی مهم است که در کلمات رهبری هم مشاهده شده است. و سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. دارن اصلا اینجا این نیم ساعت رو برای سوال گذاشتن. استاد اجازه بریم سوالی کسفی همه سوالات بپرسید تا من بعد یعنی سوال نیست، سوال داشته باشه. حکم رانی هم داره من رو به این قائلیم رو از قرآن میفهمید مثل لحال خلق والعمر یا از کلمه ملک و ملکوت و اینجا اشاره داشتن که ما گرفتار تصدیر ارفانی به این معنا که وقتی میگیم ملکوت یا ملک به معنای عالم ماده و معنی اینجا منحره کنشیم از ظاهرش که ملکوت مبالغه در ملکه و اشاره کردن به تفاصیلی که از ادن عربی رسیده. حالا ما برای اون اختلاف نظرات روشن طلبه ها کلن اختلاف نظر ملما چیده عجیبی برایش نیست ولی ما بخواهم بدهیم نظر آقا نسبت به این بحث چیه چون شما سوالاتی که من بود آقای از من این برشید باید در خودش رو برشید نظر آقای عراقی رو نه این چیز نیست راجب موضوع شناسیم الان باید باید باید بکنه ما این نظر امام مادان راجو ملکوت چی هست اینا اون یاد به ختم ملکوت چون بحث تعبیر رو فرمودید میخوام بدونم آیا این معانی عرفانی تفاسیر عرفانی با تفاسیری که از ظاهر آیه میشه حالا ملکوت در سیره مبالغه است آیا ارتباطی بین بحث تعبیر تنزیل داره یا اینکه نه بتم. بله آره چون ایشون از حیث روشی یعنی تفسیر عرفانی حالا من جواب بدم یا آخر جواب دادم جواب دادم تفسیر عرفانی یک روش مطالعه قرآن است که حضرت امام خیلی به تفسیر عرفانی خب نگاهشون متوجه و متمایل بود معروفه امام اون عوامل قرآن در صحنه به تفسیر عرفانی ادبیات و مفاهیم و حقایق عرفانی بخشش ادبیات بخشش مفاهیم این روش عرفانی که به کار گرفت میشه بخشش هم یه حقایق عرفانیه اینا میاد و قرآن رو میبره به یک سمت و سوی یه بحثی هست که آیا تفسیر عرفانی با تعویلات سازگاری داره یا نه برخی خواستن تلاش کنن که اساساً این که تعویل هست چون شما آره نیستید نمیفهمید وربا می فهمند ولذا نوعی همخوانی رو کوشش کردن بین این دو ایجاد کنند یک ریشه از دیگه رهبری در ارتباط با قرآن تمرکز بسیار زیادی بر داره بر اونم با مرامی و مزان استعمالی ادبیات عربی و لغت برای باید لذا طبق این روش ما می باید بعد جالب از یه جایی که خیلی سخته و همه رو فراری می ده از رجوع به قرآن ایشون اومده تناسب تعبیر و تنظیل اومد ره کرده برای شکل روشی مد نظره ایشان کاملا واضح است چند چیز ارجو ال لغه ارجو ال عدب العربی ارجو ال روایات و نصوص معنای واژگانی رو به درست بیاورید در یه فراز دیگری ایشون داره که من نگه نیوردم غیر از معنای واژگانی معنای گفتمانی معنای گفتمانی واژه رو هم کلمه گفتمان ایشون نفهمیدم. ولی داره در یه جایی معنای گفتمانی این دو بند بند سومش این قاعده است که تا میتوانید تعویل و تمزیل رو در یک راستا به خط کنید هم حرمت تعویل را که همه وجود ما با آن متعلق است، در این مسیر شما اون حرمت گذاشته هم بیان قرآن را نادیده نگرفته اید. حالا این بحث ملک و رو باید تجزیه کرد بر اساس این روش که واژه لغوی اونجیست. این نگاه من دارم عرض می کنه نمیخوام بگم که حالا نگاه عرفانی باشد نباشد اون یه بحث های است. ولی نگاهیشون ایشون از حیث روشی قائمون علی هذه الامور یکی تحلیل معنای واژگانی کلمه تحلیل معنای گفتمانی کلمه و یکی هم الرجوع الی هذه القاعده بین روایات و قرآن اگر تحلیل و تندلی بود هماهنگی برقرار حالا اونجا تطبیقش گفته این نیاز داره که شما بیایید در آیات قرآن تطبیق بایید اگه ما اینقدر بخوام سوالات جواب طولانی بدیم اصلا به دوستان نمی رسد، ما مختصر میگیم بس سفاسه بس از تشکر کردن و انصال کردن با توجه به اینکه که مبنای اصولیون در بس امکان استعمال لفت در افتر من معنا باهد اختلافی است اختلافی است آیا با هر مبنای اصولی چه استفاده ای که از تعبیر و تنزیل شده ممکن است یا صرفاً با مبنایی که استعمال لفظ در اکثر از معنا را جایز میدونه یعنی از معنا نیست در اکثر از معنا نیست یه معناست بخشی شش شما نمیفهمید چی گفته در اکثر از معنا شما یه معناست رو میگه شطر من المعنا یه است. یه معناست نمیفهمید یا مثالش رو نمیفهمید تطبیق... مشکل تطبیق دارید مثالو نمیفهمید ند ایشون در چند ماه خود بشه دیگه می بله؟ تناسب بشه کردی؟ خب پیدا نکردید جهل به جهلتون اعتراف کنید که تناسبش فهم نکردید. یه همچین دیگه اون داره یعنی قاعده کونیش هست که بخشی از معنا رو داره ارائه میکنه. چرا؟ قرآن بیان است، یه معنایی داره. اون تناسبش رو باید فکر کنید. گایی خواهد تناسب رو علم کشم کنه. مثلا فرض کنید. سال، دویست سال، سیست سال پیش تناسب نیم فهمیده. اما الان وقتی شما آیا رو میبینید. چقدر تناسب دارن اینا با هم. زمانه هرچی که فکر بیشتر قوی میشه. بلو. سال دارم اینکه با توجه به با مطالب بیان شده اگه ممکنه چند تا کتاب کاربردی و کارساز در این زمینه معرفی فرمایید کتاب کاربردی چجوری چی در موضوع موضوع شناسی حالا مقاله ای کتابی موضوع شناسی عرض می‌شود البته قدیمی‌ترها موقعی که جنت و شابند اون موقع ما یک مقاله نوشیم موضوع شناسی تاریخش رو و قواعدش رو تو این مجله دفتر تبلیغات اون مقاله 17-18 شد بیشتر و اون خیلی مقاله خوبی چون هم تاریخش رو میگه اولین کسی که به اصطلاح کلید موضوع شناسی رو زده اخباری بوده اینه قبول دارید یعنی کلیدش اونجا خورده بعد اومده جلو بعد تا نظریه امام و نظریات دیگر رو اون مقاله اگه پیدا بکنید انوانش دقیقا یادم نیست و مجله فقه دهی هفتاده دارن دهی هفتاد یا دهی هفتاد یا عوال هشتاد از... اخواری استرابادی اونجا نگاه کنید بنشاق این مادر رو که ای اول از کجا اومد چگونه بود و چطور جلو رفت و نه، نظریه تبدل موضوع رو اخباریات گفتن نظریه تبدل موضوع از اوناست جلو آمده تا با امام رشادشون نظریه باشه امروز گفتن اون فایل در چیزی هم هست به موضوعی که الان ارائه دادید که دوستان بتونن داشته باشن بخشی از مطلب رو علی مونده باشه یا شاید ما یک دوره‌ای بود راجع به همین روش فکری نواماندن و رهبری 11 جلسه شد شاید بخش هایی ندین نظم اینجوریه نظم اونجا فرق میکرده احتمال زیاد میدم اونجا بخشی از این بحث ها اونجا باشه دوستان دوره دیدین پیگیری کنن اگه رو توی برنامه دوره نشان الله درست عالی کاران های آقای اسما در وقتنا حجت می دانند یا صرفا در این گونه اجتماعی که راه فرمودید توقف اجماع رو اره هم اجماع مدرکی رو معتبر نمی دانند یا محتمل المدرکی متولد نمی گیرن خب سوالی که من دیادم. دارن، فرصت یک کلام دارن. سلام نام <تص> و سلام نامه تمام.